اما خانم آقای اون یه بررسی انجام شده تو تهران و نتیجه این بوده که میانگین سن ازدواج به سی و تا چهل سال رسیده جان چی شده؟ سامی یه چیز داره میگه چی میگی؟ بگو تو گوشم میشنم ای جدی؟ چه جالب خب دوستان میگن که بله حاج آقا این در اصلا این خبر رو میست که در جرنش بوده و برای این قسمتیه یه آگهی هم ترتیب داده که آماده است دیگه الان میتونیم به اتفاق بشنگیم بریم بریم بفرم آیا جوان عذاب شما از ازدواج فراریست؟ آیا تا به حال چندین بار این ملعون از پای سفره عقد و مراسم پرشور بله برون فراری شده است؟ آیا نمی توانید او را به زور چک و لگد هم وادار به ازدواج کنید؟ چاره کار شما پیش مایه با علموم های زوجیابی دفتر ازدواج و سیغه هاجی سرا جوانان بدبخت بیچاره مجرد تنها مانده خودتان را مزدوج فرمایید ما به شما قول می دهیم جوان شما تنها با یک بار ورق زدن آلبوم های ما چنان حس ازدواجش زنده بشه که یک حس چهار بار ازدواج بکنه با ما تماس بگیرید نه تماس نگیرید دیگه به دفتر ازدواج و سیغه ما مراجعه بکنید تا در اشرع وقت جوان شما را به عقد یکی از حاضرین در آلبوم های در بیاریم جوانش از شما ازدواجش از ما دیگه به اطلاع می رساند حاجی سرا به ازای جور کردن هر مورد ازدواجی برای جوانان یک مورد سیغه مجانی هم برای پدران عروس و داماد جور می نماید به شتابی تا نظر من عوض نشده است حاجی سرا در خدمت جوانان ازدواج نکرده و پدرانشان اجی از نمیدم بخواست نمیدم نمیدم به کسی نمیدم باشه و و حالا حاجی دیگه حاجیه دیگه آه یعنی چی به پدر عروس دو دوماد آخه سیقه مجانی میده من نمیدونم نشد این حاجیه کاری بکنه ما قجلتشو نکشیم من جرمندم من معذرت میخوام دیگه حاجیه دیگه کاریش نمیچیکن خوشحال شدن اینا آنگه عروسی میره از همه بیشتر بچه های ما مثلی خوشحالم بله خسته باشید. <تص>